عوض بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خدمت عزیزان دانشجوی خودم از سلام دارم و صبح خیر آرزو دارم که انشاءالله سال تحصیلی رو خوب خوش آغاز کرده باشید در نعمت صحت و سلامت کامل باشید و آرزو دارم که انشالله خداوند شما را از هر گزندی روحی جسمی دور بدارد انشالله و بتوانید با تمام قوا این ترم درس خودتون رو ولو به شکل مجازی هم هست ادامه بدید به خدا باید توکل کرد و روحیه خودتون رو حفظ کنید انشاءالله این شرایط به زودی به دعای خیلی امام زمان انشاءالله برطرف میشه و باز ما به شکل حضوری در خدمت شما خواهیم بود و داشتن روحیه و توکل شرط اوله و من هم برای شما این توصیه رو دارم اما مبحث خودمون در این ترم اما بحث ما در این ترم در سر روز و است که چون درس جدیدی است و شما نسبت به مزامین اون چیزی نمیدونید دونید لزوم داره که من یک مقدار توصیه ها و راهکارهایی رو برای شما داشته باشم و کتاب رو هم کتاب درسی و خدمت رو معرفی کنم و حتما تهیه کنید انشالله به بهترین شکلش میتونید استفاده کنید اما این درس عروس خدمت شما ارز کنم که درسی است که در اون حضور در کلاس و حفظ خیلی تأثیر داره یعنی تأثیر صد درصد داره یعنی از اینهایی نیست که بشه نشست خوند حفظ از خود کرد یا جمع و جورش کرد برای آخر ترم و شب امتحان نه باید حفظ کرد من هم که الان دارم قریب به سی سال هستیم کتاب رو تدریس میکنم و این درس رو دارم چه در این دانشگاه چه دانشگاه دیگه اگر یک ذره از حفظ کم باشه من هم با خواهم موند فقط حفظه یادگیری قواعدش و حفظ پس بنابراین من دوتا توصیه به شما دارم این هم نیستش که اگر کسی در درس دیگری ضعیف است یا غیره در این درس هم این شکل باشه نه اینجا هر کسی که تلاش کنه فرمولش رو یاد بگیره و حفظ کنه میتونه نمره 20 هم بگیره و اگر نه خب کلاهش پس محرک اما کتاب درسی ما کتاب علوم البلاغه یاد میکنیم علوم البلاغه فی البدیه و لعروزه و کتاب علوم البلاغه فی البدیه و لعروزه ول مال آی دکتر عبازر عباچی دکتر عبازر عباچی دکتر عبازر عباچی از انتشارات سمت انتشارات سمت چون کتاب درسیه و برای همین مورد هم نوشته شده انتشارات سمت هم این رو عنوان کرده فعل در دسترس یعنی قابلیت تهییش رو داره حالا شما انشالله این کتاب رو تهیه میکنید و ما هم مباحث این کتاب رو با شما دنبال خواهیم کرد و انشالله شما از درس شیرین استفاده کنید یه نکاتی رو هم خدمتون بگم چون ابتدای این بحث یعنی المعروض ما قواعد و نمیدونم فرض از و اصطلاحات و اینجور چیزهارو، رو خدمت شما میگیم، شما اگر این اصطلاحات رو یاد نگیرید وقتی وارد بحث بشیم دیگه گم میشید. ما اونجا فرض بفرمای میگیم و سببه سبب خب اینها شما باید این اصطلاحات رو آ از نوع اسمار و موارد این چنینی که اصطلاحاتیه که تو این علم به کار میره ما ابتدا این اصطلاحات رو به شما یاد میدیم بعد از اینکه اصطلاحات رو یاد گرفتید وارد وزنهای شعرها میشیم چند نمونه رو حل می‌کنیم و وزن و مطالبش رو با هم جراحی می‌کنیم و مشخص می‌کنیم شما هم همون نمونه‌هایی رو که من کار میکنم در کلاس همونها رو حفظ میکنید قبائد و مطالبش رو یاد میگیرید و در امتحان هم همونها رو امتحان میدید یعنی برگه امتحانی شما این بار الان جلوی روی شماست یه سری اصطلاحات، یک سری اصطلاحات، اصطلاحاتی که حفظش بکنید. این اصطلاحات دو تا سه تا پنج تو امتحان برای شما میاد بعد از اینکه اصطلاحات به پایان رسید یک سری عبیاتی رو که با هم خوندیم به شما خواهیم داد و این عبیات رو میگیم که ما سر سا... کلاس کار کردیم شما هم اونها رو اینن برگردان پس بنابراین بحث مشخصه کتاب رو هم که خدمت رو کردم کتاب علوم الولاغت فلودیه ولعروزه ولغافیه و این کتاب از آقای دکتر عبازر عباچی از انتشارات سبت خب ما از امروز یعنی از این الانی که داریم با هم شروع میکنیم بعضی از اصطلاحات و مطالب رو بسم الله میگیم و شروع میکنیم و من میخونم یواش یواش برای شما شما انشالله کتاب رو هفته آینده که در خدمتون بودیم دارید و ما با سرعت بیشتری این رو خواهیم کنیم ما این کتاب دو تا قسمت داره یه قسمت قسمت اولشه که در مورد بدی نوشته علم بدی ما این علم بدی رو در بلاقت خواهیم کنیم یعنی این علم بدی در بلاقت خواهیم کنیم پس بنابراین این قسمت اولش نظر نیست یعنی اگر یک زمانی بعضی هاتون خواستید کپی کنیم در واقع از قسمت علم الثانی علم الثانی علم العروض که این کتابی که چاپ قدیمش هم هست دست منه صفحه 34 و به بعد. یعنی از صفحه سی و به بعدش رو ما خواهیم کند که علم عروض شروع میشه اون قسمت بدی چون در علوم البلاغه ما خواهیم خون دیگه اینجا دنبال نخواهیم کرد اون جزء درس این ما نیست خب علم که شروع شده ابتدا میگه علم العروس یک تمهید یعنی مقدمه مقدمه علم عروض توی مقدمش یه تعریف علم و عروض رو بیان میکنه که علم و عروض تعریفش چیه؟ بعد فایده علم و عروض رو بیان میکنه این مقدمه است بعد کیفیت وزن شعر رو بیان میکنه درست کیفیت وزن شعر. بعد کیفیت تقطیع کردن یعنی شعر رو از نظر علم عروزی، قطع قطع کردن کردن بعد اجزاء بیت شعری رو میگه بعد هم زهافات و علل خصوصیاتی که در شعر اتفاق میفته اینها مقدماته یعنی اینا رو اگر ما بدانیم بدانیم میتونیم وارد بحث اصلی عروض بشیم پس یک تعریف علم دو فایده علم سه سکریفیت وزن شعر و همینطور به بعد اما تعریف علم عروض تعریفش رو من برای شما میخونم تعریفی که گفته میگه هوا میزان و شعر این علم عروض وزن کردن شعر، میزان مفزان بوده واقع قلب بیا شده اسم آلحه. یعنی وسیله وزن کردن ترازو ترازو شعر یعنی شعر رو توش ببینیم این شعر ما وزنش میکنیم این رو میسنجیم آیا این شعر ساختار صحیحی دارد یا ندارد پس علم عروض علمی است که ساختار صحیح شعر را به ما نشون هم و شعر. خب بعد میگه بهی بهی تو عرف و بهی تو عرف و اوزانهو از و من مختله بهی یعنی با علم عروض. به کمک علم عروض شناخته میشه اوزانهو وزنهای شعر از صحیحتو وزنهای صحیح شعر من مختلا از وزنهای مختلف. یعنی چی؟ یعنی فقط میزان شعر دیگه ترازو شعر فقط با این ترازو هست که شما میتونید تشخیص بدید که اوزان این شعر صحیح است صحیح است یا مختلف یعنی مثلا یه بیت دست شما آمده شما با این علم عروس میتونید تشخیص بدید که این شعر وزنش موسیقیش درسته یا نه موسیقیش مختلف این به شما این رو میفهمون که آیا موسیقی شعر درسته یا مختلف حالا نگاه کنید ما ما با علم عروض موسیقی شعر عربی رو صحیحش رو از غیر صحیحش میشنسیم ببینید زوق عربی زوق زوق عربی از قبل از اسلام قبل از این چهار تا علم عروض کشف بشه و بیاد زوق عربی موسیقی رو برای اشعار خودش انتخاب کرد موسیقی رو انتخاب کرد یا شعر میگفته در قالب‌های موسیقی خاص خودش فرض کنید مثلا 16 ریتم موسیقی بوده 16 تا ریتم موسیقی که ما تشخیص کردیم عرب توی این 16 لیتم موسیقی شعر خودش رو میریزه اینو ما کشف کرد بعد خارج از این 16 تا اصلا در بین اونها نیست یعنی قبول ندارن میشه خارج از یعنی اصلا وزنش مختل میشه خراب میشه این 16 تا فرض. حالا ما با علم عروض که این اوزان صحیح رو انتخاب کردیم میفهمیم اگر کسی شعری گفت و این اوزان رو داشت شعرش داخل در موسیقی شعر صحیحه و اگر خارج از این بود خیلی خیل. این شعر مختله شعر خارج از موسیقیه خارج از ریتمه پس به واسطه علم عروض شناخته میشه اوزان صحیح شعر از اوزان مختلف مثلا فرض کنید یکی از وزنهای شعری که شما زیاد هم شنیدید وزن رجزه یعنی رجز تو میدانهای جنگ ما نگاه کردیم دیدیم که این برای رجaz اینها وزن مصطفی آلن مصطفی آلن مصطفی آلن یه مصراء مصطفی آلن مصطفی آلن مصطفی آلن اینها یه مصراء انتخاب کرد مصطفی آلن مصطفی آلن مصطفی حالا مصطفی اگر کسی رجazی خان شعری گفت و شش مصطفی آلن داشت تا مصره اول سه تا مصره دوم خب ما میگیم شعرش سعیه ما این شعر رو تیکه تیکه کردیم دیدیم همین اوزان درانه همین موسیقی در شعرش هست میپذیر اما اگر مثلا شعر گفت یا اومد مصطف علون مصطف علون مثلا شد فاعلون بعد شد فاعلون مصطف علون مفعولون اینطوری درست کرد نیمه خارج است؟ پس یه اوزان شعری داریم که ذوق عربه و اینها اوزان شعری صحیحیه که ما از زبان عربی بیرون آوردیم یعنی بزرگان ما حالا ما به واسطه معروض این اوزان رو میتونیم صحیحش رو از مختلفش تشخیص بدیم حالا مثال بزنه میگه کما انن نهوه میار الکلام مثل اینکه که شما نهو میعار میعار یعنی آلت ایار کردن که ایارش درسته یه نه سخنه نه مثلا فعایل باید مرفوع باشه مفعول باید منصوب باشه مضافون باید مجرور باشه خب اگر این قواعد رعایت شد این کلام صحیح از نظر نه اگر این را رعایت نشود فایل مجرور بود مفعول مرفوع بود مضاف الیه منصوب بود ها میگیم این کلام غلطه طبق اصول نحو نیست ببینید نحو رو ما درست نکردیم یعنی در واقع میشه بگیم اصول نحو در زبان عربی بوده قبل از اسلام که امروال غیس و نابغه و اینها شعر میگفتند و قرآن هم نازل شد در اسلام بعد مردم قرآن رو میشنیدند و اون لهزیبایی لذت کلام رو میبردند اینها هیچکون نحو نمیدنست اس نحوی نبود بعدها آمدند این کلام رو سنجیدند روش فکر کردن بالا پایین ریز درشت هر آنچه که در این کلام بود و دقت کردن قواعدی بیرون آوردند که این قواعد کلام صحیح رو نشون میداد باید اینطوری باشه. شعرم قبل از اینکه عروض بیاد بوده موسیقی بوده ما اومدیم عروض رو قواعدش رو از اون در آوردیم مثل اینکه زیبایی بوده بعد حالا زیبایی شناسان اومدن میگن آ این به این دلیل زیبا شده که اینجوریه اینجوریهجوریه این قواعد زیبایی درین اینه کما ان النحو معیار الکلام حالا تعریف نهوینه دیگه بهی تعرف هو من ملحونه با علم نحو شناخته میشه صحیح کلام از ملهون کلام ملهون با هجیمی یعنی قدد صحیح کلام از غلط کلام چون یعنی یه نفر اگر آمد مثلا گفت رعا زیدن غلام امرن لاؤ زیدن غلام امرن زید قلام عمرو دید چون خود رعا که فیده زیدون فاعلشه شد مفهود قلام منصوبه منصوب عمران مجرور مضاف و جمعی قاعده درسته نه میگه این گلام سعیه حالا اگر آمد گفت رعا زیدن قلام و عمران میگه شما فایل رو مجرور کردی، مفعول رو مرفوع کردیم مزافون الیه رو منصوب کردیم این نهر رو ما از کجا به دست آوردیم از کلام عرب دیدیم اونهایی که فسیح و صحیح صحبت می‌کنن میگن را زیدن قلام امر خوبه خب عروض رو از کجا به دست آوردیم از شعر عرب دیدیم اونهایی که شعر گفتن یه قسمت شعرشون که مثلا در مناسبت های رجزی و غیره میخوندن وزنی رو که ما توش پیدا کردیم موسیقیش نوتی که توش پیدا کردیم اینه مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف علون مصطف مصطف خب این درسته حالا اگر خارج از این نوت کسی بزند غلط است کماعنن لحوه میعار و بهی بهی یعرف و صحیحوه منمره حالا هر علمی یه واضعی داره هر علمی یه واضعی داره مثلا علم نحو علم شریفیست واضع اون امیر المومنینه. که به عبال دو علی گفت کلام عربی نیاز به این داره که قواعدی داشته باشه و تبه اون قواعد ریخته بشه و درست بشه پس بنابراین بیایم قواعدی براش وحس کنیم عبال اسود دوالی رفت اولین قاعده ای که آورد پنج تا کلمه آورد گفت اینها یه جور عمل میکنن حروف مشبرتون بالفعل بود یک شد جاید وقته بود ساینه لکنه و امیر المومنین نگاه کرد گفتش که زعفی نه، لکنه نه، هم تو همین وزه شیشتن اینا بعد همینطور ناسب ها جازم ها رافع ها فعل فاعل مفعول مزافون لگ جمالات. اینا همه به مرور از زبان عربی کشت شد و قواعدش به دست دو. در علم عروض هم واضعش الان میخوانیم و اول من وضع اصول و قواعد ازل علمه و اول من وضع اصول و قواعد ذل علم خو و احمد الفراهيدي اولین کسی که اصول و قواعد این علم رو از زبان عربی در برد از اشعار عرب بیرون آورد خدیبه بن احمد فراهیدی است استاد ویه خدیبه بن احمد فراهیدی وقتی شعر های زیادی رو از عرب همه رو بررسی کرد بعد نگاه کرد گفت قفا نب که من ذکرا حبی بن و من زدی. اینطور اینها رو هی تختی کرد موسیقی و نوت رو برد هر کدوم بعد دید اه بیشتر شعرها ها توی این سبکند کند این نتو دارند خیلی هم این نوتو دارن خیلی هم این نوتو دارن نوت‌های مختلف رو بیرون آورد بعد برای هر یکی از این نوت‌ها اسم گذاشتن یکی رو گذاشتن بهر بسیط یکی رو بهر کامل یکی رو وافر یکی رو رجز رمل و امسالی اول من وضع اصول و قواعد حاضر ارم خوبه الخلیل بن احمد الفراهیدی استاذ سیبویه مشخص استاد سیبه و احد و اعلام لغت و ادب فل اصل عباسی و یکی از بزرگان لغت و ادب عربی است در عصر عباسی اول پس خلیل بن احمد فراهیدی واضع مخترع علم عروزه و این شخص استاد سی و هم هست این یکی از بزرگترین لغویین و که بشه بگی که اولین کسی است که کتاب لغت هم نوشت این کتاب لغتی داره اسم کتاب این الان هم هست این کتاب این رو به عنوان کتاب لغت ایشون نوشت و اولین کسی بود که موجب در لغت نوشت و اولین کسی بود که موسیقی زبان عربی رو از زبان او رو بیرون آورد و اسمش هم عروس شد استاز و سیببه و اهد و علام لاغطول ادبه فل از فل عوای گرفت. حالا اینجا کتاب یه چیزی میگه که من تکرار کردم بر میگه شما فکر نکنید که موسیقی شعر عرب رو موسیقی شعر عرب رو آقای خلیل ابن احمد فراحیدی کرد. نه شناخت این موسیقی در زبان اونها رو او متوجه شد این قالب‌ها رو که مثلن که نحو، نحو در زبان عربی بود، ساختارشون بر اساس نحو صحیحه. صرف بر اساس گردش لغات صحیح. صرفی که نحویین اومدن این گرامرها رو از زبان دروند. مثل گرامر زبان فارسی. خب الان 200 تا سال جای خدمت نداشته بود. داریم سعدی و حافظ شیرینترین فارسی رو صحبت میکرد فارسی بود غیر رو ما در آوردی مثلا مفعول با را میاد حسین را دیدم لذا میگه گفتن قدکان شعرا او و قدکان شعرا او قبله شعرها قبل از آقای فلید ابن م... فر... احمد فراهیدی ینزمونش شعر شعرها قبل از اینکه احمد فراهیدی به دنیا بیاد شعر می سرودند خب اونها اگه شعر می سرودند اساسی اساسی معتمدین علا ملکاته اونها اعتماد به استعدادهای خودشون داشتند اون قریه و استعدادشه یعنی وقتی میرفت به میدون جنگ قریه و استعدادش میگفت اینجا رجز رجزم مصطفیلون مصطفیلون مصطفیلون مصطف موسیقی را میشناخت بر اساس اون موسیقی شعر می گفت به ذوق و هاست سلام هدایت شده بودند اینها هدایت یافتگانی بودند با ذوق سلیم عربی با زوغ سلیم, سلیم میفهمیدن که بچه وزنی باید شعر بگن تو همون غالب شعر خودشونو رو و هاستت سمت و با گوششون یعنی با گوشش وقتی میشنید که قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی آنگوی این میسخواه اما اگر میشنید قفا نبک من تذکر حبیب و منزدهی نه نه نه نه این موسیقی خراب شدید خارج از نوته ولو معنا همون باشه پس دو تا چیزی اینها رو کمک میکرد یکی استعدادی که در موسیقی در زبان خودشون داشتند و دومی قبه شنوایی. الان هم موسیقی دانه های بزرگ حالا درسته که اینا نوتها رو میشناسن غیره ولی میبینی گوششون با گوش من و شما یه مداری فاصله داره وقتی که میشنوه همون لحظه که میشنویم که اینجا رو بخون اینجا سکت داره اینجا اشکال ایجاد شد سریع میتونه بده پس خلیل ابن احمد فراهیدی از زبان عربی قوائد موسیقی شعر رو بیرون آورد. و این قواعد حالا البته ایشون مثل آقای دعبل خضایی مثل عبال اسبد دو علی که پایگزار نه بود شاید مثلا یک درصد نحو هم او قواهدش رو بیرون نیاورد ولی بقیهش دیگه در طول این دوران هی بر این پایه چیده شده تا قصری به نام نه الان ما داریم. عروض هم همیطور اما فایده علم عر فایده علم عروض چون هر علمی را اگر انسان فاعدهی اون رو بدونه خب گم نمیشه دیگه تشخیص میده که چی لازم داره و چی میخواد فایده علم عروض ایشون میگه میگه لقد تبینم بعض الفوائد من تعریفهی میگه قسمتی از فایده های علم عروض از تعریفی که بالا گفتیم که بهی تو و غوزانه و از صحیحت و من مختلها بعضی از فوایدش فهمیده شد لقد تبین بعض الفوائد من تعریفه و ان انلوزی فعیله ها مایلی بگه بعضی از فوایدش معلوم شد میتونیم یه چیزهایی هم ما بهش اضافه کنیم اینجا پنج تا فایده رو میشموره پنج تا فایده رو میشموره بعضش رو بالا اشاره کردیم پنج تا فایده رو میشموریم یک توجیه شعر حسب القواعد و اصول بل اسس التی نظم علیها العرب پایه اول سوق دادن شعر عربی به حسب بر اساس قواهد و اصول و پایه هایی که شعر برش شعر عرب برش بنا شد خب شما اگه میخوای شعر بگی شعرت باید بر چه اساسی باشه؟ تو شعر عربی بگی باید شعرت بر اساس قواعد و اصول و پایه هایی باشه که عرب بر شعر گفته چی به تو کمک میکنه که شما شعرت رو صوق بدی، به طرف اصول و قواعد و پایه‌هایی که در شعر زبان عربی هست این علم عروز این علم عروض به تو این استعداد رو میده این رو در اختیار تو قرار میده که تو شعر خودت رو به طرف اصول و قواعد شعر هست اولش یک توجیه شعر سرخ شعر حسب القواعد به حسب قواعد و اصول حسب القواعد برای اصول برای اسس لتی نزم پس اولیشین شد که شما داخل در موسیقی شعر عربی میشه شعر خب. مثل که در نحو بگیم نحو اولین فایدهش اینه که, کلام شما, میتر... این که شما ش... کلام شما رو میبرد به طرف این شما قواهد صحیحی رو در نحو تو کلامتون رعایت کنید کلام شما رو میبره به طرف کلام صحیح عربی یعنی طبقا اون قواهد شما صورت این فایده خیلی بسریه شما داخل موسیقی شعر عربی میشید دو معرفت صحیح شعر من معیوبه معرفت صحیح شعر من معیوبه کلمه معیوب کلمه معیوب خودش معیوبه آب یعیبو اسم مفعولش میشه معیبه و صحیح هم اینه که بگه ها؟ معرفت و صحیح شرم معی بهی مثل با عیبی او اسم میشه مبیع مبیوع و بعد اعلال میشه میشه مبیوع. معیوب هم به کار اما خیلی درجه بلاغتیش پایینه از نظر صرفی استعمال شده تو زبان عربی به این شکل مثل اینکه بگیم مبیوع یعنی مبیع فسیح و صحیح او باردون بحث نمیشه. پس معرفت و صحیح شعر من به قولا شما شعر نمیخوای بگی که شعرت رو ببری تو غالب شعر عربی درست شعر نمیخوای بگی شعرت رو ببری تو قال. اما میخوای شعر بخونی یا نه حالا اگه میخوای شعر بخونی این علم به شما اینو یاد میده که بشناسی شعر صحیح رو از شعر دارای اختلال عیب یعنی اگر کسی گفت بفانب که من ذکرا حبیب و منزلی یا آقوی ولی اگر گفت بفانب که من تذکر محبوبت و منزله ها و منزله میگه این نیست این شعر جور پس دو شناخت صحیح شعر از شعر دارای عیب پس فایده اول توجیه و شعر حسب القبائد ولا اصول ولا اصسلتی نظمه علیه العرب فایده دوم و معرفت و صحیح شعر من معیبی سه فایده سوم. التمگیز بین الاوزان المختلفه این خیلی مهمه تشخیص بین وزن‌های مختلف الان کسانی هستن که شعر وقتی نمی‌شناسن وزن نمی‌شناسن تو فارسی خب اگر این طرف مثلا سمت راست یک سری عبارات نوشته شده وسطش خالی باشه سمت چپ هم یه سری عبارات فکرمان شعره بعد شعرها همه همشون براشون یه جوره مثلا بعضی شعرها هر مصراش خیلی بلنده بعضیش مثلا کتایه بعضی ها متوسط اونا وزنه هاشون با هم همه هم یه جور میخونه میدید هر شعر رو به دستش میخونه تو نمیشناسه شعر اما اون که شعر شناسه اون میدونه این وزنش چیه موسیقیش چیه این تو چه مناسبت های بیشتری موسیقی به کار بیره. این رو با یه سبک میخونه با یه شک میخونه اون یکی پس همه شعرها برای او بگید یه شعر مثلا شعر رجز ها خب شعری که اومده تو میدان جنگ و الله این و یمینی اینی او هامی ابدن این یه واسند و یه موسیقی داره یه نو خوندن داره رجزه شعری که مناسبتی گفته شده قها که من ذکرا حبیب و من زلی. یا یه جور دیگه نه. پس همه شعرها برای او یه جور نیست کسی اینو موسیقی کسی میدونه خب میگه این مثلا تو موسیقی فلان گفته شده، این تو موسیقی فلان گفته شده هر کدوم از این نوت‌ها یه جایی به کار میره نوت شادی با نوت غم فرق داره نوت حوزل با نوت سرور فرق داره نوت تحریکی برای میدان جنگ با نوتی که قزلیست و عاشقانه فرق داره همه یه جور دیگه براش نیست شعر ها همه بگه شعر چیه بگه اونی که یه قسمت این یه قسمت اون برداره یه مصره های شعر برداره همه نه اون بگه فرق میکنه از تمیز و شعر ادتمیز بین الاؤزان مختلف برداره حالا اگر مثلا پونزده شونزده وزن شعری مختلف داریم شونزده تا نوت داریم همش براش یه جور نیست فایده سوم. فایده اول شعر شما برای حسب به غواید و دو مینه شعر عربی سروده میشه فایده دوم شعر صحیح رو از شعر ناسحیح میتونید تشخیص بدید فایده سوم همه اوزان شعری برای شما یه سبک نیست فهم میکنه فایده چهارم تمهیز و شعر من غیرهی که نصر این خیلی مهم مهم هم برای کسانی که محقبت باشن برای تحقیلی کنن شما آینده این فایده در علم عروض به درد شما نخواه تمهیز شعر از غیر شعر مثل نصر مثلا شما یه زربال مسلی میبینید تو زبان عربی از کوزه همان برون تراوت که درست خب دو یا گریه بر هر درد بی درمان دواست خب اینا مثلا از ضرب المثل یا یه تیکه شما تو شعر میبین توی زبان فارسی میبین نمیدونید این ضرب المثل نصره یعنی کلام زیبایی یه گفته شده یا شعر چون اگه شعر باشه میگردید اون مصره دوبانشو پیدا میکنید بعد اگه بلد باشید بیادید اینو تقطی کنید تختی که کردید مثلا در اومد فعولون مفایلون فعولون مفایلون یا این شعره پس من بذار اینو بگردم مصره دوبانشو پس گریه بر هر درد بی درمان دواست چشم گریان چشمه فیض خداست پیدا میکنید بعد میگردی میبینی که نه این وزن نداره چون وزن نداره درست شد؟ ها مثلا نمایده گفته به حرف گربه سیاه باران نمیهاید منبان کنی وعظ نداره مثلا نمک را خورد و نمکتان را شکست میبینی این ظهرون مثلا به کام بینید کلام هست اما وز نداره خب میگه این شعر نیست این چی به شما یاد داد؟ علم عروض پس علم عروض فایده چانمش اینه که شعر از غیر شعر مثل نصر برای شما محلیت پنجم که خیلی فایده مهمیه خیلی قراعت و شعر قراعتن صحیحتن دون ایجاد خلن فی وزنه کسی که علم عروض میداند شعر رو صحیح میخواند میدونه اینکه که خلل در وزنش پیدا الان دیدید بعضیا مثلا شعر شاهنامه شعر حافظ شعر سعدی میگی بهشون چقدر بد میخونند چون این به عروض نمیدونه میر میکنه بد میخونه یه جایی باید سکت بده یه جایی باید ادامه بده وقف کنه ابتدا کنه خوب نمیتونه بخونه خب ولی اگر عروض فارسی رو بدونه مثل شاعری که آمده داره مثلا شماالا خیلی دیره می که شعر حافظ رو به چه قشنگی می شاهنامه رو به چه زیبایی نفای میکنه ببین خب بر اساس چی داره اینطور می بر اساس سرما عوس قراعت شعر دراحتا صحیححتتا دراعت و شعر فرآتا صحیححتتا دون ایجاد فی فیبده پس 5 تا فایده داره این عه یک اگر ما بخواهیم شعر بگوییم و شعری داشته باشیم شعرمون رو صحب بدیم بر اساس که در شعر عربی است خارج از نت دیگه نمیکیم فایده افر. فایده دوم شعر صحیح رو از شعر ناسحیح میتونیم تشخیص بدیم فایده سوم همه اشعار دیگه برای ما یه جور نیست تشخیص میذاره به ما ما تشخیص میکنه بین اوزان مختلفه شعر ادتمیز بین اوزان مختلف. چهار شعر رو ما از نصر تشخیص میدیم نیا اگه یک کسی آمد نصری رو خواست مثلا موسیقی شعر بخواند. میگه این وزن نصر همه برامو یه جور نیست شعر رو از غیر شعر مثل نصر میتونیم تشخیص بدیم شعر وزن داره نصر نداره پنج قراعت شعر قراعتاً صحیحتا شعری اگر دستمون بیفته میتونیم اون رو صحیح قراعت کنیم بدون اینکه ایجاد خلل در او بشه یعنی شعر رو به گونه‌ای می‌خونیم که اون لذت موسیقی رو موسیقی در شعر رو شنونده می‌بره. فایده های کمی نیست؟ خب. پس دو تا از موضوعاتی که با هم بحث کردیم، توی مقدمه که تعریف معروض بود و واضح ما گفتیم، دوم فایده معروض بود که 5 تا بود اون رو هم کیفیت وزن شعر کیفیت وزن شعر یعنی شما میگی شعر وزن داره کیفیتش چجوریه شعر چمونه وزن دارد بحث سرمانه میگه یمتاز الشعر شعر نصر ویژگی پیدا میکنه شعر از نصر چی؟ شعر از نصر جدا میشه با چی؟ به وحدت ال الموجودت دی به ریتم هایی که هست در شعر شعر داره ریتمه داره موسیقیه ایقاعاتی در شعر هست اما در نصر نیست من الان دارم صحبت میکنم با شما راحت هم دارم صحبت میکنم وزن نداره اما اگر شعر باشد ما اون شعر دارای وزن اون وزن داره موسیقی داره یمتاز و شعر اله به الوحدت اله ایغاییت ال موجودت فیل. به ریتم هایی که در این شعر هست شعر از نصر شداره و ها وحدت و ایرائیت و تختلف و من بحر نلا آخره و این ریتم های موجود در شعر هر بحر رو که ما هر سبکی از شعر رو میگیم بحر انگار است در, در موسیری هر بحری اون ریتمش با بحر دیگه یکی نیست متفاوت. یک ریتمش فاولان مفاایلون فاولان مفاایلون یک ریتمش مستافادون مستافادون مستافاد. این یک قابو هم فرق کنه. و هزه البهدا تل ایرانیاتو تختلف و من بحر این آخر. خوب. پس چه از نظر به ریتمش شناخته میشه که در شعر هست و این ریتم ها هم یه دونه ریتم نیست ریتم های متعدد که بهش بحر میگن در شعر وجود داره وقد ده دعبه. دعبه یعنی اعتاده عادت کرده وقد دعبه لعروزیونه الان یرمزوره ها زهر الوحدات نقمیت به کلمات لا معناله ها غیر دلالت مواضع حرکت و سکون و قد اول عروزیون و عادت کردن در عروزی ها اساسشون بر این نهاده شده بر چی بر این که اشاره کنم الاغر مزو لحاظ هل وحدات نقمیته به این ریتم های آهنگین در موسیقی اشاره کنه به کلمات با یک کلمه هایی که لا معنا لها این کلمه ها معنا نداره میگه خب معنا نداره چه فایده داره میگه غیر دلالت على مواضع حرکت و سکون اینها این, این کلمات فقط دلالت میکنن بر مواضع حرکت و سکون یعنی کدوم حرف متحرک کدوم حرف ساکن گوش چطور در صرف این باره مثال بزنم مثلا در صرف میگن وزن فعله داریم مثل زردن نصر فتر بعد میگن این وزن فعلا مزارش میشه یفعلو مثلا یزربو یفعلو مثلا ینسرو یفتهو مثلا یفعلو مثل یفتا این فعله یفعلو فائل مفعولن استفعلای استف یستفعلو که شما تو صرف میخوندید این کلمات را آورده اینا معنی نداشت که اینا فقط به شما چی را نشون میداد غالب اون کلمه رو، وزن اون کلمه را. مثلا بوگو فعله معلوم فعل مجهول. اینو میفهمن خودش معنا نداشت اینجا هم شما وقتی که میگی که فعولون مفایلون فعولون مفایلون این فعولن و مفایلون معنای ندارن فقط نگاه کن فعولون این فعولون میفهمونه که اول حرکت متحرکه مثل قه, قه. اون میفهمونه که اولی متحرک دومی ساکن قه فا ف این فقط و فقط در واقع حرکت و رو به شما نشون میده این کلمات هیچ معنای نداره مستفعلن مس میگه یکی متحرک ساکن تف یکی متحرک اکی ساکن ا متحرک ت تف ا لون یکی متحرکی کسا یعنی در واقع مثل اون توی کلاس های اول ابتدایی که میگن با با آب داد آب و کلمات رو بخش میکنند متحرک میشه یه بخش متحرک و ساکن میشه یه بخش اینم هم همونطوره ریتم موسیقی خب وقد دعبل عروزیونه الان یرم زوله ها زهر وحدات نقمیت به کلمات به این ریتم های موسیقی آهنگین با یک کلماتی اشاره میکنن معنایی نداره جز دلالت کردن بر موازه حرکت و صبح و ها. و نامیده اند الوزی ها این تفعیله را و سموها تفعیلات و سموها تفعیلات بینا میگن تفعیله مصطف علون مستفعلن سه تا تفعیل است این ستارو میگن تفعیلات جن فعولون مفایلون فعولون مفایلون هر کدومش یه تفعیل هست این چهارتا میشه تفعیلات چهارتا تفعیل و سموها تفعیلات این همون به کلمات لا معناله ها این کلمات اسمش روشن تفعیل ها و سموها تفعیلات و هیا الان نوعین و این ها دو نوعند اصلیت و فرعیت یه سریش اصلیا یک سریش فرعی‌اند گوش کنید شما اگر 16 تا بحر موسیقی دارید مثلا این 16 تا هر کدومشون مثلا از 6 تا تفعیل یا 8 تا تشکیل شد مثلا یکیش فرض کنید فعولان مفاعیلن فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن فاعولن مفاعیلن 8 تا است بعضی اشونا تا مثل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل تا این 16 تا بهر شعری که شما داری این 16 تا اینطور نیستش که مثلا هر کنومش اگر میانگه 6 تا داشته باشن مثلا نزدیک 8 تا تفعیل 100 تا تفعیل بشه شما 100 نوع تفعیله های مختلف داشته باشید نه 8 تا تفعیل است، به عنوان اصلی نگاه کنید الان فعولن فاعلن اون اصلی ها اینان فعولن فائلن مفاعیلن مفعولات مفاعلتن فائلات مستفعل متفائلن چند تا شد 8 تا مفاعیلون، مفعولات مفاعلتن فاعلاتن مستفعلون، متفائل این هشتا تا اون اوزان رو تشکیل دادن حالا اینها اصلیا فرعی هم دارن معلوم مثلا از وزن فعولان و مفاعیلون ما دیدیم داشتیم فعولان مفاعیلن فعولان مفاعیلون فعولان مفااعیلون فولان. مثلا وزن مستفان دیدیم خودش با خودش تشکیل مییم. همینطور مثلا ممکنه فعولان با فاعائلان تشکیل بشه یه 8 تا اصلی هست. این هشتار انتخاب اخت... به قول خودمو اختراک کردن از شعر عربی که این هشتا اصلی هستند فعولون فائلون مفائیلون مفعولاتون مفاعلتون فائلاتون مستفعلون متفاعلون بعد نگاه کنید و فریتن وزن فرعی هم دارن این فرعی ها از کجا به دست میاد مثل اینکه شما فرض کنید توی زبان عربی تو صرف تو صرف شما گفتید که مثلا اسم مفعول بر وزن فاعل مفعولن میاد خب ولی گاهی اوقات مثلا قال یقول اسم مفعولش به جای مقبول میشه مقول با عیبی او اسم مفعولش به جای مبیوع می مبیع مبی تغییرات پیدا جا می درست شد پس وزن مفعول میشه وزن اصلی تغییریافته از او مثل وزن مقول مفعول درست شد میشه وزد فرعی چون توش اعلال صورت گفت اینجا هم همین طوره اون هشتا اوزان اصلی هستن میگه بحر رجز از شیشتا تا علون تشکیل میشه مصطف علون مصطف علون مصطف علون اما این مصطف ها همیشه مصطف علون نمیموند گایوغاد یه تحریراتی توش داده میشه به اصلاح خود ما میگیم مثلا فرض کن تو صرف اعلال یه اعلالاتی توش دست می جایز هست قرب ها خودشون این نوت رو اجازه دادن به جای مصطف مثلا مفایلون گفته شد شده مصطف علون مفایلون مصطف علون اشکال نداره شما اینو باید همون مصطف علون مصطف, علون مصطف علون ببینید و بحر رجست این بحرهای فری چیز تفعیلهای فری توی این بهرهای شعری از همین تفعیلهای اصلی ساخته شدن با اجازه هایی که بهشون دادیم و فرعیت و یه تحصول و تغییرات لتی و این تفعیلهای فرعی حاصل میشه من تغییرات لتی تطر و علت تغییرات تغییراتی که جایزه است تغییراتی که آرز میشه بر تفعیلهای اصلی و هیه تحصول منت تغییرات علتی منت تغییرات علتی تطره و تطره یعنی آرز میشه تحرز و علت تغییر تغییرات بر تغییرهای اصلیت نهو حالا نگاه کن داشتیم فعولان این فعولان گاهی اوقات میشه فعولو گنونش میفت فعولان میشه فعولو این یه بحث یه دونه ف گاهی اوقات میشه فعول یعنی همون لام هم ساکت میشه فعول درست بعد داشتیم فائلون فاعان گاهی اوقات میشه فان یعنی ادف پس میشه فایلون گایی وقت میشه فعلن یعنی عین هم ساکن میشه این دوتا از فایلون در مفایلون میشه مفائلن یا هست شد همینطور وزنهای مختلفی از اون اوزان بالا به دست میاد مفایلون مفایلون بعد مفتعلون فایلان از فایلاتون فایلان فایلاتون علفش داده فاعلاتو نون آخر افتاده مفعولان متفاعلاتون یه چیزی اضافه شده الان نگاه کنید به اینها این وزنهای فرعی بعضی یه چیزی ازشون کم شده حالا یا حرف یا حرکت کم شده بعضی هاشون یه چیزی بهشون اضافه شده مثلا فعولون شده فعولو حرفی ازش افتاده فعول, ل. فعول ل. یه حرف و یه حرکت افتاده فائلون شده فائلون الف افتاده فائلون الف افتاده حرکتم افتاده اما متفاعلون که شد متفائلاتون یه چیزی اضافه شد متفائلون شد متفائلاتون اضافه شد پس این اوزان اوزان فرعی به دست میان با اضافه شدن یا کم شدن از اوزان اصلی حالا یا حرکت کم میشه یا حرف کم میشه یا که اوقات اضافه میشه پس چی شد اومدن برای خاطر اینکه بحرها شناخته بشه، موسیقی فهمیده بشه، یه کلماتی رو آوردن و اینها رو معیار کردن برای خاطر اینکه شما بتونید وزن شعر رو بفهمید. این کلمات معنام نداره، اینا رو اسمش رو گذاشتن تفعیلات. اینا هم دو جورن. تاش داش اصلیست اصلی است، فاعولن، فاعلن، مفاعلن، مفاعلن، مفاعلت فاعلات مستفعلان، متفاعلن اینا اصلی بعد از روی اینها با اجازه ای که در زبان عربی در شعرش دیدند آمدن چه کردن یک اوزان فرعی رو هم که از روی اینها ساخته شده پیدا کردند که فعولو فعولو فعولو فعول و فاول فعول فعلون، مفاعلون، مفتعلون، فاعلان، فعلاتون، فائلاتو، مفعولون، متفاعلاتون یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نه، ده، یازده تا عنوان بهرهای و تفعیله های فرق از روی اون هم ساخته شد میگه و حاضر تفعیلاتو به نوعی ها این تفعیل ها با هر نوعش حالا چه اصلی چه فری و حاضر تفعیلاتو به نوعی ها حقیقت در واقع اوارتون ان موازین جزئیت تو زنبه ها الکلماتو من حیصل مدد زمنیت علت یستغره ها اتلاف این کلمات حالا چه نوع اصلیش مثل فعولون چه نوع فریش مثل فعول یا فعول عبارتند از میزانهای جزئی یعنی سنگ ترازوهایی هستند برای اینکه شما کلمات شعر رو وزن کنید از حیث مدد زمانی ببینید قه ف نب که این چقدر طول زمان میبره این سیلابها ها چقدر زمان میبره اینها ها هم همینه میگه ف او لون ما فا ای لون همینه تو زنبه ها منحی سل مدد زمنی یا تلتی یا از تغرقه ها زمانی که فرا میگیره تلفظ ها یعنی به شما نشون میده که این سیلاب‌ها ها هر کدوم چقدر؟ آیا هر کدوم از این بخش‌ها چگونه است از نظر تلفظ حرکت یا حرکت و سکون پس بنابراین ما آمدیم در شعر عربی تفحوز کردیم شعر عربی رو جراحی کردیم شعر عربی رو به هم ریختیم اون موسیقی شده رو آوردیم. دیدیم که هشتا میتونیم کلمات اصلی و تعدادی هم کلمات غیر اصلی از موسیقی این بیرون بکشیم و در واقع اگر مثلا فرض کن مصطف علون مصطف جاش جشمیزاری همونه همون سیلابها و بخش ها پر میکنه بچو مطمئن چی میمونه شما مثلا کسی شعر میخاند. مثل مثلا فرض بفرمایید که امای شجریان میخونه شما میبینید یک شعری رو میخونه به موجگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم بعد شما میبینید اون موسیقی هم که داره میزنه اون تاری که داره زده میشه اون سنتوری که داره زده میشه داره همین رو میگه ها درست شد؟ در واقع اون این رو نمیگه اون داره در واقع اون سیلاب ها رو با مقدار زمانی که در زمان فراگیری داره داره طی میکنه شما میتونید تشخیص بدید پس بنابراین علم عروض یک سری کلمات تفعیله داره که اینها بعضش اصلی بعضی هم فرعی که طبق قاعده ساخته شده از روی اون و زمان رو نشون میده به ما که چقدر فراکی دید حالا از این تیکه به بعد با توجه به اینکه شما هم امروز کتاب رو ندارید و من میخواستم مقدمات رو بیان کنم بعد از این رو دیگه من نخواهم خوند میگذارم که تا هفته آینده حتماً کتاب رو تهیه کنید به هر شکلی که براتون مقدور هست تهیه کنید بعد بتونید حالا اگر کسی هم تحییه کرد برای اون یکی ها بشه ایک نرم افزاری بفرسته در لبتاب خودتون کامپیوتر خودتون در گوشی خودتون داشته باشید که انشالله هفته آینده من بتونم از اون مطل براتون بخونم و امروز من در واقع یک سری مقدمات رو صحبت کردم هفته آینده هم این مقدمات رو نیشان سعی سری میکنیم تمامش کنیم بعد از هفته بعدش بتونیم وارد بحث اصلی علم عروض بشیم و شعرها رو بهرها رو با هم دیگه بیاریم و خواهشم هم, هم اینه که این مقدمات رو یاد بگیرید اینها رو اگر یاد بگیرید اونجا ما دیگه راحتیم شما میگیم این مثلا فرض بفرمایید که این تفعیله رو داره رو داره. شما تو مقدمات رو میدونی مثل مثلا فرض بفرماید کسی تو صرف بگه فاول فعل این فعل, فعل ناغ مثلا فاول فعل شرف فعل است و خب اگه گفت فاول فعل شرف لس است اگه کسی فاول فعل رو بداند حرف فعل رو هم بشناسد زود تا بش میگه وعده یا فاول فعل شرف فعل منظور یعنی که واقع. درست نه؟ میفهمه اینم همینطوره یعنی شما لازمه که اون اصطلاحات رو بدونید تا انشالله بتونیم ما بخونیم باز هم خدمت شما عرض میکنم این درس حفظ کردنیه و نیاز به این داره که یه مدار باش بازی کنید اصطلاحات رو خلصه نویسی کنید هر درسی رو بخواید رو نویسید بیشتر از اول خودمون چار خط نمیشه پنگ خط نمیشه بعد حفظش کنید و حفظ کردن تو این درس اساس کار بعد که الحمدلله شما ذهن خوبی هم دارید حفظ کردید دیگه مطمئن باشید این درس رو بلدید و هیچ مشکلی هم نداره و من هم خارج از مثال های کتاب که برای شما حل کنم، کن سوال امتحانی نخواهم داد یعنی همون هایی رو که خودمون حل کردیم همون ها رو به عنوان سوال امتحانی خدمت شما میبینیم انتظارم دارم که ان با دلگرمی بخونید به خدا توکل کنید و ان در آخر ترم هم هم من رو سفید باشم هم شما و خدا هم از هر دومون راضی باشم. تا تافلایت شما رو به خدا بسپارم ان شاءالله که در صحت و سلامت کامل باشید. محفظ و معییت باشید در پناه حق التماس دو. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتا.